أوزوا بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهینه سعی. راه خیر و موفق و عام. به سلامات به تقدیم بر محمد و آل محمد. الله علیه و سلم. محمد را ودی عنا. خارج جله في ما سلف الا مصصنيا، و تختص عن هو أن يستحب للمرأة حرة كانت أم أمّتاً، أن تجمع بين قدميها في القيام و الرجل به بينهما بشبر إلى و دونهو قدر سلا اعصاب مفرجات مفرجاتن و تزم و ها الى صدره ها به یدای ها تتمهی که در اینجا داریم مربوط به اینه که زن فیقی از احکامی که مشترج هست یه سری مصلحه هم داره اینها رو ببینیم میگه که اولا زن و مرد در احکام نماز کلیتش یکیه چیه زنم نماز میخونه مردم نماز میخونه مثل هم میخونم چند تا مورد قبلا داشتیم استثنا میشد یا تون هست حالا بعضی هاش البته ما نرسیدیم تو محدودهی بود که نرسیدیم اون موارد رو شما حتما تو زنتون باشه بله آره؟, آره؟, آره مواردی بود که استثنان مثلا پوشش زن دیگه خیلی روشنش بود دیگه زن موقع نماز پوششش با مرد فرق میکنه زن کلن عورته ولی مرد نه خب زن چقدر باید می خودش رو؟ غیر از صورتش دستش روی پا دستش و روی پا باید بقیه موارد رو می اما مرد اینجوری نیست مرد اینجوری نیست آره. نه دستش رو نمی خواهدی گفت خیلی خوب، حالا بقیه مواردش هم میتونید جمع کنید حتی میتونید به شکلی رساله بنویسید تفاوت های زن و مرد در نماز همش رو جمع کنید یه جا اما اینجا و تختص و انها انلهو حالا زن اختصاص میابد از مرد در اینجا این تختص معنای بله، تمایز رو هم در تزمین داره تختص و تمایز دارد از مرد تزمین میدونین چیه؟ تزمین یکی از مهمترین مطالب هست در فهم قرآن و حدیث که خیلی تو نحوه حوزوی بهش پرداخته نمیشه انشالله اگر کارگاه ادبیات گذاشتم من اون رو اونجا توضیح میدم اگه بودیم آره دیگه کلاس اینتر این خیلی چم شده دیگه بیکاره رجبیم کارگاه چیزی بذاریم پرکنیم بله. تزمین تظیم رو میبینی انحوجت بعد تختصو واسلم میشه که تختصو به رفتی ربطی نداره انحوب تمایزه ربط داره او خب، تمایزه کو نیست توی تختصو قایمه اینو میگن تظیم اگر تظیم رو یه نفر ندونه و تفسیر بنویسه یا قایره به تظیم نباشه. نباشه اصلا تو قرآن خیلی هست اگر کسی قائل به تزمین نباشه یا تزمین رو خوب نفهمیده باشه و با. یا قائل به اون نباشه و اینا تفسیرش خیلی به درد میخواد خب مستحب بالای مرد ایدار برای زن مستحب است چه حرب باشد چه امه پس این همیشه وقتیه دیگری اها آن آه. مرد باشه یا زن عمدا یکی هم فرقهای دارم زن هم ممکنه حره با عمه فرق داشته باشه همین الان نقدن یادتون هست چه فرقی داشت تو نماز ها عمه گفتیم میتونه سرش نه نپوشونه تو نماز نماز ها مردم بعضی وقت از این احکام اشتباه برداشت یعنی میگه آقا در نماز کنیز میتونه موهاشو باز کنه میبینی فردا تیتر زدن تو آقا سحر رفتن از بیرون جایزه یه چیگو؟ یه همین مجدت فتوا داد. بابا اون یه چیز دیگه بود. مثلا امام فتوا داد که شطرنج اگر این باشه، این باشه، این باشه، این باشه با این شرایط جایزه. یه دفعه گفت آ شطرنج حلاله، کلا به بازی این این جوریه. لذا باید مصلحت موقع فتوا دادن حواسش به این بازی های مردم، یه از مردم باشه. اونم می‌خواد سوء استفاده کنه. خب یو استحب و للمره هررتن این دیگه فرقی نداره ام. امتن انتجمعه بین قدمه ها پاهاشون جوری جفت به هم بچسپونه فیل قیام خوه قیام دیگه و رجل, رجل یه ذره باز میکنه بین پاهاشون یو فرق و بینه همه چقدر به شبرن یه وجب الا فطر فطر چقدر هست فاصله بین سر انگشت شست و سر انگشت سبابه یعنی همون هم انگوشت لغت دارم؟ آره چشمه دارم من نگاه کنید یه وجب انقدره میبینید از اینجا تا اینجا ولی یه فتر انقدره حالا برای که دوستان که صوت کش میکنن متوجه بشن میبینید وجب که مشخصه حالا اون سه تا انگشت تو ببند فقط همین انگشت 60 و انگشت بعدی این چی بود این انگشت شش اشاره, اشاره،, اشاره، انگشت سبابه اینها به بمون... نه خیلی ببین خیلی فاصله داره اگر سانتی متر کنید شاید مثلا الان یه وجب من شاید 25 30 سانتی باشه ولی فطر 20 سان شاید دو سه 3 بشه یا کمتر بشه خب و دو نهوز آقا کمتر از اون یه وجب یه فطر کمترینش قدره یا قدره رو سلا سه اصابه سه انگشت سه انگشت به این شکل البته باز ببینید وقتی میگن مثلا سه انگشت چهار انگشت سری بعدش میبینید مفرجات یا زمینه شده به هم چسبیده به الان اینجا چی میگه سه انگشت مفرجات سه انگشت باز احمد چموشه دیگه اگه بخواد خود سانتیمتری من. باز من الان حدود ده سانت هست فتر من حدود بیس نزدیک 20 سانت وجب من هم نزدیک سی سانت هست. البته خب من یه خوده یک کلم بزرگتر دارم بسا علیم آمدی اینو نصف کنید همینو جوزی نصف کن. سنگوش نه <سنگوش> دیگه سنگوش اینجوری ببین اینجوری هلا عاجر شدن به هبه هبه گفتی بابا جان آره اولش مستحب بود و تزم ما سر حالا کریم اگه نمیپست از این به بعد سر نماز یه سانتی میگه واجبه بابا جان مستحب حواستون چی؟ نه اینا مستحب بدید و تضم و ببینید خیلی از این مستحبات گویی مثل آدابه یعنی آداب اینجوری آداب نماز خوندن این شکلیه چه مستحب هست یعنی یه چیزی هم بهتون میدم آداشی هم بهتون میدن. علی محمدی تضم و ها الا صدره ها زن مستحبه موقع نماز هاش رو با دستش اینجوری به حالت فشار فشار بده زمیمه کند هایش رو به صدر خودش بگرده ها با دستش با دستش نه چه وجود دستش رو بیاره سینه‌اش رو بگیره نه یعنی با همین ریشه دستاش با این اینجا چی میشه بازو بازو بازو این بازو بازو بازو بازو بازو بازو بازو بازو بازو بازو بازو و تزعو یدای ها فوق رجبته ها دستهاش رو در هنگام رکو مستحبه همه اینا مستحبه مستحب بس در هنگام رکوع دستهاش رو بالاتر از زانوها بذاره رو همون کاسی زانوها نذاره پس ببینید اینا با مرد فرد تاره دیگه راکعتن در هنگام ظاهر او ها... حالا شنسانی یه بحث میکنه اینجا میگه ظاهرش اینه که زن به همون قدر مرد خم میشه ولی دستاشو رو کاسی زانو نمیذاره بالاتر میذاره این فهمیدید دیگه شما درسته؟ شهیده ببینید شهید اول گفت که مستحب زن انگام رکو دستاشو رو کاسی زانو ها نذاره بالاتر میذاره خب سوال چقدر خم میشه زن در موقع رکو؟ از این عبارت چی میفهمید؟ همون مثل مرد مورد خم شدنش حرفی نزد شهید سانی میخواد اینو اعتراض کنه میخواد بگه که آقای شهید اول صحبت رو محل قرار گرفتن دست نیست صحبت روی اندازه خم شدنه و شما بد گفتی اینو ببینیم ظاهر عبارت شهید اول ظاهر هو انه هو تنحنی انه ها که اون خانم نمازگذار مسلیه هم میشواد قدرن حناء رجل و همون مقدار که مرد خم خب میشه زنم خم خب میشه فقط دستش رو در اون جایی که قرار میده با مرد فرق میکنه تو و مرد را در وضع دستش در حالی که و روایت انه یوجزه او ها من الانحناء ان تبلغ کفاه کفاه ما فوق رج در حالی که ظاهر و روایت این است که برای زن کافی است انقدر خم بشه که دستش به بالای زانوها برسه دیگه بیشتر خم نشه متوجه شدی فرقش رو اگه شما بخواید دستتو رو به خود زانوها کاسه زانوها برسونی خب خیلی باید خم می‌شی روایت گفته که اینقدر خم نشه همینقدر خم شو که دستت به بالای زانوها برسه پس انحنای زن کمتر میشه شهید اول رحمت الله علیه روایت اینو گفته نه این چیزی که شما گفتید چیزی که شما گفتید فرق چی تو حاله چی تو تو زن مرد را کفها آره. ها هم دو تا کفش ما یعنی اونجا که فوق زانوهایش است آقای شهید سانی اینو از کجای روایت میگی؟ میگه لعنهو عللهو فیها به دولهی چون امام علیه السلام تعلیل کرده آن را تعلیل کرده این دستشو بالا گذاشتم را وضع را اینجوری بگو وضع بالاتر از رجبتین را لعنهو هم بنازم به, به امام میخوره هرچن میتونه شان باشه له حفی ها به قله در اونجا این تعبیر رو برده ببینید. ازت هم دست زن دست خودش رو بالاتر از آنهاش بذاره د اللا تو تحت ع چسیرم و تر تف هم پشت زن. ازت فرمود که تا خیلی خم نشود لعلا تو تعتع کسیرن خیلی, خیلی خم نشود فتر تفعه. تا پشتش بالا بره اطویت شدی؟ هم. پس روایت نظرش به محل دست گذاشتنه یا نظرش به مقدار خم شدنه مقدار خم شدن رو داره میگه اگر هم گفتن دست تو بالاتر بذار برای اینکه که زیاد خم نشی؟ حالا این در کنار این بحثا اینم استفاده کنید که اسلام چقدر باحیا است اسلام چقدر به حیا اهمیت میده با اونجا موقع نماز عبادت میگه باشه خیلی خرم نشو که ظاهرت ظاهر یه جوری نباشه که محرک باشه با همون چادر دیگه آره دیگه با همون چادر دیگه با همون چادر یعنی همین رو عرض می‌کنم که ببین چقدر حیا در اسلام تا چه حد بالا و مهم هست <تصفيق> تو اون روایت هم هست که حضرت موسو علیه السلام که با به دختره شویب کمک کرد بعد اونا رفتن بعد از یه مدت حالا جالب حضرت موسی سر حالا نمیم سر به سجده گذاشت چی؟ به خدا گفت که به تعبیر من به خدا گفت که خود هیچ ندارم هیچ واقعا به معنای واقعی کلمه هیچ چی نه خونه داشت، نه زندگی داشت، نه چسوکار داشت، نه شغلی داشت، نه پولی داشت، نه غذایی داشت، نه لباسی داشت، نه امنیتی داشت، هیچی نداشت. ولی یه جمله خیلی قشنگ گفت اونجا گفت: "رب نی لما پنزل تعیلی گمن خیرن فتیر." خدایا، هر خیری به من نازل کنی، من به اون نیاز مندم یه دفعه دید که یکی از دخترها برگشت و گفت: "پدرم باهات کار داره." همه خیرها از اون به بعد بهش رسید. امنیت، خونه، زندگی، ازدواج، شغل، خانواده، چه و کار همه چی بهش رسید ولی ببین موسا هم عوضش اینجوری بود موقعی رفتن تو روایت هستش که اولم میگه اینو دیگه آیه میگه میگه که دختر شوهی اومد تمشی الاز تحیائن با حیا آمد ناز و چرشمه نگرد موسا حالا بریم یه اول یه جشتی بزنیم برد. یه بستنی بخوریم بر اینجوری نگفت که یه بستنی بکنیم آبی به اینجا فرکه بستنی آره اینجا خیلی اینا نه اصلا این چیزا نبود تمشی الاسطحی ها این بعد کلامش رو ببینید خیلی کوتاه. این نه عبی چیه اونجا آره آره کوتاه میگه پیان بعد موقع رفتنم تو روایت میگه میگه موسا گفت که شما جلو نیفت من جلو میفتم هر وقت دیدیم مسیر عوض میشه به هم از پشتر خبر بده ماها ها پشتر زن ها نگاه نمی کنیم اینجوریه این باعث میشه که اون رو بهش می دهن خیلی این رو دیگه باید از لسان روایت در بیاریم ببینیم این استحباب رو کلا قراره به زن قائل بشیم یا نه جای که نامهرم هست ممکنه قائل بشیم همیشه دیگه بستگی به اون لسان روایت داره این یه ذره بحث سختیه ظاهرشینه چه این پر لن مستحبه ولی ما میدونیم حکمتش اینه که نامهرم نباشه دیگه نامهرم نیست که چیزی از اینجه هد یه مدار سخت میشه نه خب اونجا اون یه زن داشت دنبال خودش میخواست اینو ببره دیگه بله بیرون تو را پیمایی که شما دنبال اون که نیفتدی اونجا اون میخواست آدرس نشون بدون اینا لا. آره لن از اینجایت مشکل نیست مشکل نیست زمینه که اونها دیگه اون رعایت ها و ملاحظات دیگه سطه بالاتره دیگه حالا اگر انسان میخواد تا اون رو مراحت کنه سرشو پایین مندازه آره. چی گفتیم؟ اه؟ تا تا رو کجا شنیدید؟ تا تا تا تا یوتا تا تا کلو شریفه لشرف کن باره. خیلی اینم در مورد حضرت مرسومین هست که هر شریفی در مقابل شرافت شما سرخم میکنه این. در مورد زیارت جامعه هستی که در مورد نظر چی تو دنیا اینجوری داریم چه تحت اکلو شریفن به کن هیچ کسی نداریم فقط اهل بیت رو داریم هیچ شریفی در مقابل شما شرافت نداره اونا شرافت نیست که شما هرچی هست فقط شما هرچی هست فقط شما خیلی خوب دوره امام شناسی اگر خواستید اون کتاب متابر رو بخونید همین زیارت جامعه رو بخونید اون کتاب واضیاش مل... م... معلوم نیست با چه موانی نوشته شده این رو کنید امام شناسی همین زیارت جامعه خودشو دیگه شما دیگه آره دیگه چم چم دیگه آره. هر جا شو لغت یا ترجمه رو ببینید تعتا یعنی سر خم کردن خم شدم اینجا داریم دیگه کل و شریف لشرف کن منیش مشخصه دیگه یکتی تو این فضا خب وزال که لا یختلف و بختلاف وضعه ما بل بختلاف انحنا حالا این ببینید این استدلال که الان امام اوورد که میگه خیلی خم نشه که این پشتش بره بالا بد دیده بشه این با مقدار خم شدن عوض میشه یا این که دستش رو هی اونجا عوض کنه کدوم؟ اون تأثیر دست تاثیر نداره مقدار خم شدن مهمه پس اینجا این حجم در واقع نظر به مقدار انحنا داره عبارت شهید اول اینو خراب کرد نارساب بود حالا من یه اعتراضی هم به خود شهید سانی دارم اون همینه چه آقای شهید سانی و شهید اول و دیگران ها هم. همه این مطالب که الان داریم میگیم همش متن یک روایته که کلینی هم آورده تو کافی خیلی هم خوبی خوبیه خوب خود روایت رو می آوردید ما خودم می فهمیدیم دیگر چرا روایت رو می دی فره ها خودشونو از اون در میارن میدن به ما بعد میگن آ اینا بد فهمیدید چرا چون تو روایت اینو خب خود روایت رو روایتو این چه کاریه دقیقا, دقیقاً دقیقاً دقیقاً لغمه رو به جان که اینجوری عادی بخوریم داریم از اون وعده امام اینجوری گذاشته لقمه تو دهنمون میگیم نه امام که حرفش چیز قابلیت نداره شما امام حرفش رو بده به فقها ها به ما یه کتاب بنویسن اونو بخونیم اونا بفهمیم نتیجش همین میشه و الله عبارت شایده و تخصیر نداری همین میشه دیگه نتیجه همین این مسیرتون مسیر خوبی نبود خوبه های بزرگ بار. و تجلس و حال, حال تشهده ها و غیرهی در حال تشهد و غیر تشهد می نشیند زن پس احکام اختصاصی زن رو داریم میگیم مستعبات اختصاصی زن رو دیگه ارز کردم در حال تشهد و غیرش چه این میشینه غیر از تشهد؟ بگو سلام مثلا علا علیه ها در هنگام تشهد و غیر تشهد بر علیه خودش میشینه یعنی بر روی باسن خودش میشینه حالا شاید سانی دیگه توضیح نمیده فقط لغتش رو میگه میگه بلیاعین من دون تا این بین هما علا غیر قیاسه ببینید الیه مفردشه الیه با تا این رو دوتاش کنید دوتا الیه چی میشه علیتان یا علتین دیگه میگه به خلاف قیاس تاش هست شده علیه شده یا علیانا. من مندون تا این بین ما الان غیر قیاس هم. چون قیاسی بود که الیتان و علیتین بشه تصنیه تا یا تصنیه تو الیه به فتحل همزه الیه نخونید اینا فی هما هم علیه و هم علیه هر جفتش مفرد و موسنداش رو به فتح همزه بخونید و تا فیل واحده در واحدش هم تا داریم علیته علیتون رو پس هم داریم زن بر روی علیته میشینه اما مرد چی بود؟ تورج مستحب بود آره که روی پای چپ؟ نه روی پای چپش. راست، چف پای چپش رو میذاشد. خیلی خوب. حالا یه به نفته دیگه دوباره من ارز کنم. دیگه چاره نیست دیگه. من هر چی منبع این روایت بود. نگاه کردم دیدم تو همش علیت ها بود. <تصفح> تو همش تا بود. یعنی همین چیزی که شهیده ثانی حیث را اینجا به ما گیره برعکس روایته. حالا یه شاید ثانی نسخه بدون تایر روایت تو دستش بود یا اصلا روایتشو اینجا ندیده نگاه نکرده من داشتم اجازه چون نقطه نمیذاشتم قبلاشم نقطه نمی آقاجان زمان شاید ثانی نقطه نم نقطه رو ابوالاسود دو دوالی گذاشت زمان زمان حضرت امیر بود بابا چی بود چی نقطه دیگه داشتی کلمه‌م رو سامجام لغت از روایت معصوم که بعد نمیگه واقعا چیزی تو عرب بود من تمصیر روایت معصومیش نو ها روایت منظور نمیتونیم تو عربه است یعنی کجاش الان برای سواله علی ها تو با بابا جا این الان مخصوصه به ما روایت ما داریم رو برای شما میگیم دیگه تو روایت با تا اومده شهیدثانی میگه این علیه ها چه شهید اول گفت تا نداره ها بابا جان روایتشو میدیدی روایت تا داره هم کافی رو دیدم من یک دو تا جای دیگم دیدم حالا شاید شاهده سانی نسخه ای که تو دستش بوده از کافی و اینها تا نداشته و تبدا بالقول از این حرفای من اینو برداشت کنید شما که هر کاری میخواید تو حوزه علوم دینی و حوزوی داشته باشید بابا بدون روایت آیاتی نمیشه که باید مسلط بر آیات روایت باشید حرف بزنید بدون آیه روایت حرف بزنید بعداً سوتی می ببینید یه چیزی گفتید که مثلا همون های اصولی میشه که برای مفهوم شرط میخوان مثال بزنن میگن که و اِلَم تَجِدُوا ماءاً ما فَسَيَمْ این مفهوم داره دیگه. کلی رو مفهومش بحث میکنیم این برامون ور. بعد این آیه رو و اِلَم تَجِدُوا نیست و تجدو. ان نیست. مفهوم شرط رو این پیاده تا این حد بعضا اشتباه پیش میاد خب شما روایت رو نگاه کن علیه ها داره اونجا روایتشم آدرس رو بنویسید کافی جلد 3 صفحه 335 همه اینها توی متن امام فضل جمع کرده همه اینها رو اگه اونو میخوندیم از اول کلاس تا الان کلی مطلب یاد گرفته بودیم کافی جلد 3 صفحه 335 تهذیب هم همینا آورده تاصیب شیخ طوسی هم معمولا یا از کلمی آورده من اینا این تحقیق حالا حالا فعلا جایی نیستا اینا تحقیقات پروزه من یه مقدار تحقیق کردم و احساس کردم تعذیب شیخه طوسی و استفسارش هر داره داره از همون کافیه یا از خود کافی یا از منابع کافی یا اسمش رو یا اسمش رو نیاورده ولی کافی رو داشته باشید فقهتون تقریبا بی نیاز میشید از هیچ و تبدع و وقتی میخواید سجده برید شمای خانم ها خانم ها رو میکن خانم که میخواد بره سجده اول همینجور مستقیم نره به سجده اول بشینه بعد بره سجده تصویر کردید برای خود سرپاس باشتا این تصویر سرپاس زم میخواد سجده بره. بعد از رکول سرپاس تیگه میشینه بعد میره سجده حالا تصبیر شد چرا؟ ما همونجوری از حالت شرفان میبینیم سجده حالا یا اول دستامن رو یا زانوان رو میذاریم زمین این اول میشینه برد میره سجده تبدع و برقعود الان تلکل حالت میشیند شروع به نشستن میکند البته نشستنش هم با همون حالتی که توضیح دادیم که تورک میکنه یا نه رو علیه میشینه قبل از سجود سمت هست جدو بعدش سجده میکنه بله اینو نشیدید اینا استحباب اختصاصی زنانه دیگه بله دارم این هم کلینین رو گفته شختوسی هم اینو تایید کرده خیلی رویتش هم رویت خوبیه فیضا تشهدت وقتی تشهد رو گفت زمت فخزه ها وقتی البته این که میگه فیضا تشهدت نه این که گفت بعدش این کارو کنه ها خواستشت. مثل همون ازا قمطم سلاته فقصه دو وجوه کن وقتی این کار رو میخواد بکنه وقتی میخواد تشباد بگه زمت فقصه ها رانهاش رو به هم میچسبونه باشنی این اینو نمیتونی تصفیر کنی زمت فقصه ها زن رانهاش رو به هم میچسبونه و رفعت رکبت های ها منال ارز زانوهاش رو از زمین بلند میکنه موقع تشهد محمدی میتونی نایز را کنیم پیاده بیاید. الان تو دیدیش میگه از فرد دیگه اون تهمیش نمیکنه نه توی دیگه. آقای امام میاد ببین دو تا ران تو بیاری بالا به بیار هم به کنی بونی زنانو تو بیاری بالا, بیار بالا ببینم بارا ببین. نمیشه دیگه اون نیست <تصحنت> مجبوری بیشی یعنی مجبوری, مجبوری قشن قشنگش میگاره رو زمین باشه. الان قشم بشین سخته این تصویرش یه خود سخته از این تعبیر. بعد چف پاها رو زمین باید باشه مطبعت شدید؟ آره اصلا فردن حیعتش یه مدل دیگه است چف پاها رو زمین آها حالا قشم خود بشیم رو زمین رو بشیم آها پاها جمع آهان همچین حالتی به همچین حالتی گویا تصبیری چهره شده اینه حالا یا تو متنش اشتباهی شده چون این سخته یعنی اینجوری بشنن یه دفعه می‌نین رف پشتش تچگان رو داره یه دفعه سنگینیش به پشتش فشار بود یه دفعه زرد باید اینو پیداش کردی کجالا رفت این شکلی حالا یه استاد میگفت که اگه اینجوری راحت نبود حالت زردداری پاهاتونو رو زردل بزنید راحت آهان. اینجوری حالا دستت هم بزاد روزانه بود دیگه آره یه مدار خ برای مردم هم یه جایی این رو داشت الان من عبارت رو میخونم. محمدی خودم توجه کن عبارت رو میخونم. ببینید اینو داره میگه درست تصویر کردیم میگه فضا تشهدت زن وقتی تشهد میگه زمت فزی ها ران ها رو به هم بیچسبونه بشهد. که با حالت ثبت نمی دیگه هم حالت قبلی هم بلندت قبل الان ران ها به هم چسبیده شد و رفعت رکبتایی ها رو از رمین بلند کرد به این شکل من احساس کنم اینه که خیلی جالب در نمیاد آره یه دفعه افتاد میگه اما درست میشه. چرا اما درست دیگم آره درست ولی خودشو نگران داشته ببین دستاشو گفت کرد از اینجوری من بالکونه میره بالکونه یارو میپاره بالا خودش فقط آره نه آقا میونه با استاد ایامنا بابا ما ولی علی میونه آقا خیر حالیش میشوا بیا جا معلومه خدا خیرت آخر سال بیان خزینه دستیاری تو به پرداخت <تصفح> زحمات تو بزوشن. خیلی خب آن نه هزد حالا این موقع نشستان در تشهد بود باز افتر از اساطیب دیگم بپرسید شاید اونا جور دیگم افته باشم فعضان نه هزت انسلت انسلالا معتمدتا علا جنبی ها به یدی ها من غیر ان طرف عجیزت ها موقع که زن میخواد بلند شه اگر همینجوری اول دستش رو بده جلو خمشه این عجیزه مجیزه این بالا حالت دوباره نامناسب پیدا میشه خدا راضی نیست زن اینجوری باشه لذا میگه که انسلت یعنی به آرامی بلند میشه این به آرامی بلند شدنش معتمده بر دو طرفش با دستهاش یعنی چی؟ یعنی زن وقتی میخواد بلند شه این حالت یه دفعه حالت شیرزه مانند بشه و بره بالا اینجوری نیست. درشن رو از دو طرف تکیه میده به جنبه ها. آرام عمودی بلند میشه. مستحب به این شکلی بلند بشه. همچنین حالتی مردان جنبه همچناناتی واز زنان تحریدی میشه. مثلا مردی برای همچنین کاری بشه. همچنین حالتی مختص زنانی باشه. آخه زن مطلوبه مرد مطلوب هستی نه زن و مرد خلقتشون این شکلیه زن مطلوبه مرد طالبه به خاطر همین شما تو این سایت ها رو من نمیبینید مرد عکسش گذاشته اینجوری مثلا زن چرا چون زن مطلوبه حالا چه زن مطلوبه خدا گفته که مطلوبیت تو برای مردت نگردد برای شوهرت برای مردان دیگر اینو جلوه نکنی چون وقت اونا هم طالبت میشن بدبخ میشی اینو داشته باشی زن مطلوبه مرد طالبه حالا این عبارت رو درست کنیم براتون بله عبارت رو درست کنیم انسلل روش بنویسید معنای اصل لغویش به معنی اخراج چیزیه انسلل خواب افعال دیگه اخراج چیزی به آرامی ولی اینجا به معنی به آرامی بلند شدنم. انار میگه خودش رو خودشو به آرامی از زمین میچنه اینجوری. شیوانی نشد به دستم اون بده. هنوز نرسید. اون یعنی به آرامی خودش رو از زمین میچنه. موش دیدید؟ موش همینجوری پیش های خودمون. این صحب. به آرامی از زمین خودش رو میچنه میده بالا. این همین انسلت انسلالم. خب. حالا الان شب شما مرزیه تایید شد اینو بگو یا نداره ان چه معتمد است بر دو طرفش بگیره ها با دو دستش من غیر ان طرفا عجزت ها بدون اینکه پشتش رو یه دفعه بالا بده بر خنشه چون دیدید دیگه آدم در حالت عادی میخواد بلند اول دستاشو مخصوصا پیر باشه دستاشو میده بالا اول اون عجز مزیز کلا میره بالا بعد خودشون میبره بالا میگه این کارو نخ حالا دیگه محمدی این خوب نیست ولی گفتم بیاین این خیلی رئیس اون محمدی شرط گذاشت دیگه نمیشه مستحب واجب نیست که برای ما چرا برای ما برای ما امینه چه اگر زنی حتی جلوه نمایی هم کرد شما نگاش نکنید. خیلی سخته. یعنی شما میتونید اینجوری انسلال کنید. ولی چشم و این حدره چشم هیچ زحمتی نداری. یه لحظه میرید. اونو باید جلوشو این اینم سخته. حالا بعضی از همین شهده ما اینها از همین مراعات چشمشون به مرام شهادت رسیدن. یکی از شهده هست بنده خدا میری که رفتم از... آفر دارم آره. آره. آره دیدم که نه میگه یه ده دیدم اونجا زنها اینا مشغوله آره نگاه نکردن اینا خیلی معسله خیلی آره. حالا ببین کدوم سخته؟ اون سختره یا این هر جفتش سخته به خاطر همین هم پاداش زیاد داره حسابی پاداش میده خدا خیلی خب آه الفسلس سادس روایت شو آدرس چون نوشتید؟ روایت شو ببینید حتما ببینید آه این ترم دو دیگه ترم یک نیست وقتی میگم ببینید یعنی دیگه سر کنید واقعا ببینید چون دیگه اینا جبران نمیشه ها روایت بینی و اینها تو اساتیدتونم هم که روایتی باشن شاید خیلی پیدا نکنید من خیلی روایت دردارش رو دارم اعاتید دیگه شاید در و اصولشون بیشتر باشه. پس از من این استفاده روای رو بکنید حالا بعدم بود که تو بهتر نبود عدن این مدار رو داشته. بود. این روایت رو مراجعه کنید به فکر خودتون باشید به فکر خودتون باشید برید تو روایت رو اینها. و بعضی از طلبان دارم کار میکنم فکرن کنید آه کل کار نمیکنید که ماهمثال رو نه کار میکنن فردا دیدی عرب افتادی از دیگه گیه نه. فصل ساده است فصل ساده است چیه؟ باشو باشو باشو. بله آه و بین الرح... آقا هر وقت بحث زن و مرد گفته شد این بحث فیخی دیگه من فیخی هم گفتم نکات فیخی خیلی بهتون یاد دادم هر وقت تو کتابای فیخی بحث زن و فرقش با مرد گفته شد حتما دو قنبال خونسا هم باشید اگر نگفت یادشون رفته یا حتما نکلی نداشته الان دیگه خونسا چه کنه؟ چه جوری بلند شه؟ موقع نشستن چه جوری پشیمه؟ دستش رو زانوهاش بذاره هنگام رکوع یا نه؟ داره میگه داره که باشه احکام زن انجام, احکام زن رو انجام بده. چرا؟ احتیاط. احتیاطی تره دیگه، احتیاط. ولی تو های مستحبی و اینا احتیاط خیلی معنایی نداره. مستحبتو احتیاط چی رو می‌کنه؟ مشکلی پیش نمیاد که. لذا شاید ثانی می که یه تخیرال خونسا بین حیط رجل و مرحل جلوش بنیم سید. بنیم سید چون در این موارد اهدیاد خیلی معنایی نداره یه سوال بپرسم هر چیز زود تفهمی جواب بده در مورد این افعال برای خونسا روایت داریم به نظرتون نه. نه. چرا چون با این استدداری که گفتم معلوم شه روایتی نیست دیگه چون اگه روایت باشه میگیم روایت هرچی گ نگفته رضا از عقل خودمون استفاده چرا ممکن هست ولی اینجا حالا نبود. اینجا نبود. بله همین ایشون همین بود. بله میشه درسته, برد. درسته برد. این تذکر درسته. ممکن خود روایت گفته باشه تأخیر. خیلی خوب الفصل و, سادس و فی بقيه الصلوات الواجبه. و ما رو هم همه نال مندوبه نمازها رو براتون گفتیم نمازهای یومیه و اینا رو توضیح دادیم نمازهای نافلر و نمازهای مستبیه همه اینا رو گفتیم ولی یه چند تا نماز واجب هنوز مانده ما در مورد نماز جمعه باتون حرفی نزدیم در مورد نماز آیات حرف نزدیم نماز عیدین حرف نزدیم اینا رو بگیم یه چند تا هم نماز مستحبی دوباره شهید اول انتخاب کرده اونا هم براتون میگه نماز مستحبی ها تموم میشه بشماری نه, نه،, نه. اونا نه. اونا رو نه. رو اون رو گفتیم خیلیه دیگه پس چند تایی که اختیار شده بزام که بقیه صلوات واجبه اون دیگه قابل حسره اون مشکل نداره و چند تا نماز مندوبه چه اختیار میکنه شهید اول اختیار کرده فمن هل جمعه جماعه را تو چه تو چند صفحه بست خواهیم کرد؟ نگار مفصله درسته؟ مفصله آره برای ما حدود ده صفحه است. اینم وردش رو بدم که این مجدر را به شما بدم بعضی جهاش انصافا به روغن سوزی خواهی دفتا فکر نکنید نه ما شما بستش آسونه نه بعضی جهاش سخت خواهد خواهد نه اصلا ترم دو حذفی نداریم متاسفم <متصفح> فمن بله <متصفح> چرا؟ 46 دقیقه من 9 دقیقه وقت هست <متصفح> فمن هل جمعه تو. حالا اولش نترسید اولش چیزی نده وهی رکعتانه نماز جمعه دو رکعته که همتون میدونید و بعدا خواهیم گفت که پس اون دو رکعت باقیش چی شد اون دوتا خطبه جای اون درکت رو میگیره خواهیم باید کسوب عوض از زهره به جای زهر هر وقت گفتن عوض چیزی فوری این حکم اونجا داشته باشی به خب به جایه حکمش چی میشه؟ بجوه. حکم برخنه. حکم اونو درسته, درسته. درسته. درسته. اون رو نخونی این رو اینو بجاش بخونی آیا میشه هر دوتا تاشو با هم خون نه. نه دیگه چون عوض و معوض با هم جمع نمیشه مگر احتیاطا اینا؟ مگر احتیاطا؟ و الا به صورت عادی اینها با هم جمع نمیشه اصلا عوض خاصیتش اینه این عوض محارض حقیقی نیست، محارض حقیقیه خدایی که لطفی کردی نماز رو قرار داده حالا دوست داشته و موردش رو تنگیده این نمازی قرار بگرگذاره خب خود همون موقع چه قرار میداد همون موقع چه قرار میداد گفت به جای ظهر جمعه رو قرار میدم پس میشه عوض اون دیگه یعنی به جای اونه نه اینکه خود اون باشه اینم باشه, این باشه این که نیست با با که یه باشه یه بخواد اینها رو کنه که ببین این این چه معامله نیست که ببین عوض و معوض اصلا درقی به معامله نداره حالا تو معامله هم داریم خب چه بهتر اصلا لغت عوض یعنی این به جای اوس وقتی جای نشه ببین راننده یه صندلی بیشتر نداره که اگر بگیم این به جای راننده است، دو تا راننده امکان نداره. یه راننده بیشتر نمیشه. اینم هم همینطور عوض و معوض عرفی داریم چه اشکال داره جای هم دیگه نمیشنم یعنی با هم نمیشنن جای هم دیگه نمیشنم خیلی خوب پس از همین میشه هوچم در آورد که ظهر و جمعه رو با هم نمیشه خوون مگر اختیاط نمیشه گفت نماز اصطیم زهره و جمعه هر دو تاش نماز اصطیم بود نه نمیشه فلا یوج هم میگه فلا یوج من و بینه همه این فا تفریه بر همون عوض بودنه فحیص و تقعال جماعت و صحیحتا تجزه و انها. این هم همون منای عوض بودن که به جای اون نشست یعنی این مجزیز اگر البته نماز جمعه درست واقع بشه یه وقت قاتل هست اون یه بعد از جمعه ظهر هم میخونه خب گفتم دیگه احتیاطا منفعل نه احتیاط فلان میگه این نماز جمعه که خوندیم شاید یه وقت مثلا برای آره، کوبرویان یا صغرویان مشکل داشته کوبرویان شاید نماز جمعه در دوری واس اشکال داشته باشه باطل بشه هم شاید این نماز جمعه که پشتش میکونم شاید این شبتش نداره یا این نمازی که خوندم شاید درست نبوده احتیاطا نماز ظهر رو هم تکرار میکنه آره میخونه این ممکنه حالا حالا بازی از امام جما ها میبینید که مثلا خیلی از یک سیاسی خیلی علیه سلام نیست و انقلابی نیست و یا من باشم اونجا عاده میکنم الان چیز که انقلاب و درس حسابی قبول نداره این آدم نیست که دیگه خیلی روشنه این معلومه دیگه. لذا احتیاط هر وقت از کردید که این وسواس آره اونجا بذارید کنار ولی وسواس نبود. فقط کلاً به صورت به صورت کلی احتیاطاتون زیاد نشه خطرناک چیز است تندها چی مبنای دولت انقلاب قبول نداره انتزاع نه من نگفتم انقلابی نیست پس نمیخوام گفتم چیز که این انقلاب را قبول نداره معلوم میشه خیلی آدم عادی نیستی نه اصلا تحتییره ما از یکی آمد. از اساتید اخلاف اینو من بس بس بس بس. خودم بودم تو اون جلسه از اساتید اخلاف پرسیده شد که این طور فتره 88 که بود بعضی از علما ساکت موندن دفاعی از انقلاب نکردن بعد سوال شد که ما پشتر اینها نماز بخونیم اینا بالاخره حرم نماز داره انجام دیگه اون استاد اخلاق خندید گفت برید یه ذره جلوتر بخونید <تصفح> یعنی پشتر اونها نخونید یه از ادالت دیگه. حتی کسی که تو حرم نماز بود اون استاد چی؟ که بود دیگه من اخلاقی اصلا اخلاقی خب شما می‌خوای اخلاقی کار کنی دیگه شاید شاید شاید شاید. خب ورب به از توحیدم انحکم به کونه ها و ها ما عدم تعرض هی لوقت ها وقت ها وقت ظهر و ایزان ببینید شهید اول رو نگاه کنید شهید اول توضیح چیزی نمیگه فقط میگه که نماز جمعه عوض ظهر است خب در مورد نماز جمعه بحث داریم. سالیم من نگاه. در مورد نماز جمعه بحث داریم. ببینیم این آها آها نماز جمعه تا چه وقت داره؟ الان تا چه وقت داره؟ تا یه ساعت بعد ظهر وقت داره. بعدش دیگه وقتش بگذره دیگه نمیشه جمعه خوند. بعد ظهر زهر رو بخوند. آره یه ساعت حدودن. شهید اول اینا رو توضیح نباده معلوم میشه که میشه استفاده کرد که شهید اول جزوه اون دسته از علماست که برای نماز جمعه محدودیت قائل نیست چون بعضی از علما میگن نماز جمعه وقتش مثل همون نماز زهره تا همون یه ذره مونده به قروب وقت دارید اینو میخواد بگه میگه و روب چه بسا استفاده شود از حکم شهید اول به کان این جمعه دواسه ظهر واسه صلات زهر دیگه چون ها ما عدم تعرض شهید اول له نماز جمعه وقت نماز جمعه توضیح نداده پس میشه استفاده کرد که ان وقتها وقت ها وقت ظہر فضیلتا و اجزاهم اجزاهم یعنی همین که گفتم یعنی از لحظه اذان ظهر شروع میشه وقت نماز ظهر تا چه تا موقعی که به اندازه خواندن عصر وقت برای عصر بذاریم تا اون موقع فزیلتش هم وقت فزیلت ظهر این بود که شاخص آها بندازه خودش بشه اندازه شاخص بشه سایه انداز شاخص بشه خب پس وقت نماز ظهر رو هم جمعه هم انقدر انقدر میدونه و بهی هیچ قطع اف دروس و بیان در دروس و بیان به این قد پیدا کرده ظاهر روایت هم همینه که وقت نماز جمعه جالب اندازه همین نماز ظهره و ذهبت جماعتون الا قول دوم امتداد وقتا الالمس خاصتا و همین مقدار شاخص بشه اندازه سایه چه حدود همون یک ساعت و اینا شاید بشه و مال الهیه المسندف و فیل الفیه تو الفیه اینو گفته البته این دیگه شاهدی نداره جالبه الان نماز رومه ما شاهدی برای وقتش میگه نداریم الا ان یقال و انهو وقتون لزوف ایزن مگه این چه بگید نه آقا اصلا وقت نماز همین همینقدر تا به اندازه شاخص پلس سایه یادتونه میگفتیم بعضیا ها اندازه نماز ظهر رو تا غروب نمیدونم تا اندازه میدونم که سایه به اندازه خود شاخص بشه خب اگه اونقدر بشه نماز جمعه هم به همون مقدار میشود و الله شاهدی بر این قول نداری سلاواز به فرس و آل و آل اینو اینو اگه تونستید آدرسشو پیدا کنید ببینید نماز جمعه حالا فردا تو کارگاه اگر شد ما همین نماز جمعه رو بعد کنیم ببینیم آیا نماز جمعه وقتش تا همون غروب و ایناست مثل ظهر یا اندازه شاخه است اگر انصافا روایتی شاهدی که شهیدثانی میگه نداشته باشیم پس چرا الان آدم کلا ما نماز جمعهش با این حساب داریم میده جلو این خورده سخت میشه نها نیماره مطا این ترم کارگاه دیگه اختیاری هرچی دوست نداره؟ نه ترم اول اجباری بود که ببینید حالا اگر چیزی احساس کرد که استفاده کنه اون دیگه اختیاری